بسم الله الرحمن الرحیم بحث در علم خدا به اینجا رسید که گفتیم بخشی از مراتب علم خداوند یعنی بخشی که نه یک مرتبه از مراتب علم خداوند مرتبه علم ذاته یعنی امان که لسان دین هیچ عالم محضر حق است و علم هم یعنی حاضر بودن معلوم نزد عالم و این علم ذات به, هز... به تمام خلقت کیفیتش معلوم نیست ما نمیدونیم به چه شکلیه ولی حقیقت داره چرا دلیلش این است که همه همه موجودات رو حضرت حق خلق کرده در پره قدرت حق تعالی هستند همه موجودان پس هر چه نزد حضرت حق مخلوق است معلوم هم هست چون نزد خداوند حاضر هم هست یک مرتبه از علم هم علم در واقع در مقام فعل خداوند بود علم ذات زمانی که علم صفت واقع می شود برای ذات خدا زمانبر نیست چون ذات خدا و مجرد است مجردات عاری از هر گونه تغییر زمانی و مکانی هستند هیچ قیدی ندارند محدودیت های زمانی و مکانی مربوط می شود به موجودات ممکن و ذات اقدس اله واجور وجود است اما تارتان علم خداوند زمان پیدا میکنند. این اون زمان است که علم در مرتبه فعل خداست. خدا وقتی یک کاری رو انجام میده این فعل تعلق میگیرد به موجودات ممکن محدود به زمان. آنگاه اون علم حضرت حق هم بهش تعلق میگیرد. مسئله چی؟ زمان اما زمان به خاطر این است که در جای خودش اون فعل باید نزد خداوند تحقق پیدا بکنه در جای خودش یعنی تا بنده و شما با هم صحبت نکنین شنید در واقع اون محاوره و گفتگو رو انجامش ندین این گفتگو تحققی در نزد خداوند نداره گفته های بنده و شما نزد خدا هست به حسب علم به ذات. اما این گفتگو کردن، اون فعله تحققش نیاز به زمان داره اون زمانش که بنده مثلا فرض کنید بهش پنجشنبه ساعت فرض کنید یک ربع به هفت این زمان زمان تحقق فعل درس بنده و شماست و علم خداوند به این در واقع مفعول یک علم چه خواهد بود؟ زمانی چرا؟ چون یک بخشی از این فل تعلق میگیره به یک موجودی که موجودشی حقیقتش حقیقت زمان برداره چون ممکن است و محدود این هم مرتبه دوم علم خداست این مرتبه دوم علم خدا رو عقل انتزاع میکنه انتظا عقله یعنی عقل میاد رابطه خدا رو با اون مفعول میسنجه میگه این فعل خداست این زمان به خاطری که در واقع این تحقق پیدا بکنه نزد خدا بر وقتی تحقق پیدا کرد خدا نسبت به اون معلوم چه پیدا میکنه؟ علم پیدا میکنه اون میشه علم فعلی خدا مرتبه سوم از علم خدا علم فعل کتابه مرتبه از علم افزون بر علم ذات و علم فعل علم دیگری برای خدا هست که اسمش علم کتاب است و همه چیز در آن منعکس است علم خدا خداست بدین معنا که همه یا برخی از مخلوقات خداوند در آن کتاب چی هستند منعکسن نکته مهم اینه که این کتاب غیر خود خداست مخلوق خداست مخلوقی خارج از ذات الهی ولی متعلق به خدا به گونه خدا او رو آفریده که همه حقایق در او چه هستند ثبت و ضبط هستن اینم یه بخش از علم خداست اسمش رو میذارن کتاب مبین ال در کتاب رو اسمش رو میذارن کتاب میجیگیای داره این ویژگی ها رو ببینیم چیه در این کتاب همه چیز ثبت و ضبطه همه چیز لا رتب ولا یابسن الا فی کتابن پس اسم اون کتاب کتاب مبین ای یک. آنگاه این کتاب مبین مسلم غیر از قرآن کریمه این کتاب مبین مسلم غیر قرآن کریم. چرا؟ چون کتاب مبین مرتبه ای از علم خداست. ولی قرآن کریم مرتبه از علم خدا نیست. بلکه قرآن کریم کتاب هدایت بشره. پس این کتاب مبین که مرتبه از علم خداست غیر از قرآن است. مدعای قرآن کریمه که لا رجب ملایاب سن الا فی کتاب مبین. ایشدار خوش می‌گید که کتاب مبید. این کتاب غیر قرآنه. غیر قرآن این یکی از خصوصیاتش خصوصیت دومش رو گفتیم بلند مرتبه بودن است. و این فی ام کتاب لدینا لا علی جن لدینا نزد ما خود ما بالا این آنچه هم که منصوب ما می شود چه خواهد بود؟ بالا خواهد بعد ارز کردیم که این کتاب آشکار کننده است کتاب مبین ارز کردیم این کتاب حفظ کننده است و اندنا کتابون حفیظ این ها بود در جلسه گذشته گذشت الان چه خوایم بگیم؟ دوتا دیگر از خصوصیت های این کتاب غیر از اینکه بلند مرتبه است غیر از اینکه آشکار کننده است غیر از اینکه حفظ کننده یا حفظ شده است به حسب اونشه که در سوره مبارکه واقع آیات هفتاد و هفت و هفتاد و هشت این است که انهو لهقرعآن کریم و حقیقتا این پیام قرآن خواندنی است ارجمند چون قرآن به معنای خواندنه قرآن انه لا قران کریم خواندنی است کریم فی کتاب مکنون نهفته پنهان اون کتاب در عین حالی که آشکار است اما در این حال هم از چشم دیگران چی هستش؟ و از دستس دیگران پنهان است. همه گان به او را ندارند. خصوصیت دیگری که در این کتاب ذکر می این کتاب کتاب مادره. شما در دفاتر اداری هم یک دفتر کل دارید، بعد دفاتر فری هم دارید. این کتابی که نزد خداوند هست و ما داریم راجبش صحبت بکنیم و مرتبه از علم خداست ام مل کتاب است کتاب اصلیه یمه الله ما یشاء و یسبت مهم می هر آنچه چرا بخواهد خود حضرت ها و یثبت ثبت می و ان ده کتاب و نزد خداوند اون کتاب اصلی وجود دارد. از خصلت خدا که علم خداوند در کتاب این از اون کتاب کتاب چیه اصلی است. اون کتاب کتاب چیه؟ پنهان از دیگران. اون کتاب کتاب چیه همه چی داره ثبت و ضبط شده. اون کتاب کتاب چیه رفی بلند مرتبه است اون کتاب کتاب چیه موبین آشکاره ما در نزد حضرت حق علاوه بر اینکه یک کتاب هستی داریم اسمش امل کتاب است که در این امول کتاب لا رت بن ولا یا بسن الا فیح مگر این که در او وجود داره ما یک کتاب های ارز و جزئی هم دارین، یه کتاب‌های فرعی هم دارین. کتاب فرعی هم مربوط به مخلوقات در مرتبه علم خداست، اما بخشی است که در واقع حقایق درش ثبت دو تا کتاب رو معرفی می‌کنه، کتاب چیه؟ یکیش در سوره موراکه متففین آیه 18. این یکی از کتاب‌هاست که مرتبه ای از علم خداست ولی عمر کتاب یعنی همه چیز توش نیست بلکه چیه کلا ان کتاب الابرار لفی الی. کتابی است که مربوط به یک طایفه از انسان هاست و اون طایفه کیا هستن؟ ابرار هستند در سوره مدبارکه که این آیه هفت یک کتاب فرعی دیگر رو هم معرفی میکنه این کتاب هم است که در واقع کتاب علم خداست ولی امول کتاب نیست یعنی را رتبن ولا یابسن الافی نیست بلکه کلا این کتاب الفجار لفی سجین پس ما یک کتاب فجار هم داریم که مرتبی از علم خداست. اما کتاب فرعیست. یک کتاب هم کتاب ابرار الی... مرتبی از علم خداست. ولی کتاب چیه؟ فرعیست. اممال کتاب نیست. اممال کتاب که مرتبی از علم خداست همه چیز در او هست. در سور مبارک جاسیه این هم جزء کتاب های فرعی کل امتن تود کتاب ها هر امتی فراخان نمی شود به کتاب خودش یعنی مثلا امت ابراهیم علیه السلام یک کتاب داره امت موسی علیه السلام یک کتاب داره امت عیسی علیه السلام یک کتاب داره اما اینها مرتبی از علم خدا هستند لکن نه بر این که کتاب چرا چون اینها به منزله کتاب فرعی در مقابل عمر کتاب هستند اینها همه معلومات امت ابراهیمند نه همه معلومات امت اسلامی هستند و نه همه رثب و یابس و نه همه رثب و یابس پس مراتب علم خداوند بخشش علم کتابه این علم کتاب یک بخشش کتاب اصلیست، اصلی است و یک بخش بخش های فرییس کتاب الابرار، کتاب فجار و کتاب چیا و کتاب الامت، اوم کتاب های عمد های صالفه اینا هر کدومشون درش بخشی از مطالب نوشته بود تعبیر و الكتاب کتاب دستور مبارک رعد آیه 39 این مفهوم را تداعی می که کتاب متعددی وجود دارد چون ما رجوع به علم خدا صحبت می و بخشی از علم خدا و مرتبی از علم خدا را گفتیم علم و کتاب حالا این علم فل کتاب یک تعبیرش امول کتاب است مراد ازش چیست تداعی می که کتاب های متعددی وجود دارد که یکی اصل و بقیه فرعی هستند چون اوم به معنای چیه؟ اوم یعنی اصل ریشه و به مادر چرا میگن ریشه؟ چرا میگن اوم به خاطر که ریشه فرزندهی؟ و بقیه فرعی هم. مانند دفتر کل و دفاتر فرعی که بخشهایی از آن در اینها منعکس است یک کتاب اصلی است که همه چیز از هر کس هر حادثه و هر زمان و هر مکان در آن هست لارتو مرایب سلافی کتاب مبین و کتاب کتابهای فرعی مثل دفاتر جزئی برای اقوام یا افراد خاص وجود دارد یا اصناف خاص کتاب های با تعابیر مختلفی مثل کتاب الابرار مثل کتاب الفجار مثل کتاب ازش در قرآن کریم چی شده یاد شده بنابراین، هر جا کتاب بود این مرتبه از علم خداست هر جا کتاب بود این مرتبه از علم خداست مطابق بخش دیگری از علم خداست نه علم ذات است و نه علم فعل بلکه علمان فل کتاب از اون چه بیان شد استفاده می شود که ام کتاب کلارت بن ولا یاب سن و خصوصیتش این است که مبین است خصوصیتش این است که حفظ شده است خصوصیتش این است که پنهان شده است مکنون هست ام مل کتاب مرتبه ای از علم الهی و مخلوق است در نتیجه این ذات خدا نیست چون میفرماید ان دنا به خودش نسبت میده مخلوقی است که همه چی از جمله خود قرآن کریم هم در اون هست حالا چون میفرماید نهفی فی ام کتاب یعنی قرآن کریم در چی قرار داره؟ در یک مجموعه بزرگتری به نام امل کتاب پس امل کتاب است که همه چیز توش هست نه قرآن کریم اونایی که مترسدن همه چیز رو از قرآن در بیارن نتونستن تشخیص بدن که قرآن هم خودش سید مجموعه از چیست امل کتاب مون دنبال این میگن که مثلا ریاضیات و تطبیق بدن از قرآن ده بیارن فیزیک بدن نمیشه علم این اصلا قرآن کریب کتاب این معنا نیست قرآن کریب کتاب هدایته هرچی که از هدایت مربوط به هدایت باشه تو قرآنه اما خود این قرآن در کجا قرار داره؟ امر کتاب اینهو فی امر کتاب که خود این عمل کتاب نزده کیست؟ بله لده اینا. یعنی میشه همون علم آم خدا یا علم خاص خدا بله علم خاص خداست علم آم خدا قرآن است که خدا در اختیار پیامبر و اهل بیت پیامبر گذاشته و علم خاص خدا عمل کتاب است ام کتاب است اما یک نکته و اون ظریفترین حقیقت ظریف ترین حقیقت که حالا خواهم گفت. بجودی است. نحفی اممل کتاب لدنعللی یا لعلی یه نهکن است بسیار ارزنده که دست خوش تحولات نمی شود مکنون و محفوظ است یعنی هیچ عاملی نمی تواند در آن اثر بگذارد چیزی است که می توانوان آن گفت انندله نزد خداست نه خود خدا علم زادک اننداس یا خود اللهه خود الله به ویژه با توجه به این که در قرآن موجودات از موجودات زوال ناپذیر، با این تعبیل یاد شده که ما اندکم ینفد و ما باغ باق تا این اندازه را می شود به دست آورد که این موجودی، این کتاب موجودی تغییر ناپذیر و زوال نپذیره چرا؟ چون هرچه نزد خداونده است بله، باقین و ما اندکم ینفد اون که نزد شماست نفاد پیدا میکنه از بین میره زوال پیدا کنه اون دست خداسب بین نمی میره زیرا این به خدا همواره علم ازلی و ابدی است اما که حقیقتا این کتاب چیست کجاست و حقایق گذشته حال آینده عالم چگوده و به چه شکلی در آن ثبت شده اینها پرسش هایی است که قران درباره آن سکوت کرده و ما هم طبق روایت اصکت و اما سکت الله ساکت باشید در اون که خدا راجوش حرف نزده از پیش خود چیزی نمیگیم در رابطه با امول کتاب اما یه روایت رو میگیم چون خودشون فرمودن این که در قرآن کریم بن ولا یابسن بن فی کتاب مبین کتاب مبین از های کدوم کتاب بود بله ام مل کتاب بود درست شو؟ و احسنناه حفی امام مبین ما همه خلقت رو در امام مبین در واقع ثبت و ضبط کردیم مراد از امام مبین میگن کی هستش؟ وجود نازنین حضرت امیر المومنی علیه علیه السلام تجلیه اوس و این به این که پیغمبر هم تجلیه اوست. منطقه خدا حضرت رسول گرامی به امیر نسبت میدهد. تجلیه امام مبین که احسای نافیه کل شعه حمل درش احزا شده است وجود نازنین حضرت امیر مؤمنینی. خب ما دیگه بیشتر از این راجبش صحبت نمی کنیم چون دیگه بیشتر از این نمی توانیم کرد و فرم خب این هم مرتبه علم, علم کتا. اما بریم سراغ سه تا مسئله مهم راجع به علم خدا. مسئله اول. اگر علم خداوند به حقایق. حالا چه در علم ذات باشد. چه در علم صفات باشد. چه در علم فعل باشد. چه در علم کتاب باشد. همه حقایق یک جا هست دیگه. درسته؟ هر کدوم از این سه مرتبه باشد. خب یه اشکالی پیش میاد. این اشکاله. بحث رابطه علم خدا و اختیار انسان و اگر همه چی همه حوادث بی کتاب مبین باشه اگر همه حوادث در علم خدا در علم ذات و خداوند باشد، خب انسان چه اختیاری داره؟ آیا اختیار داره یا نداره؟ این یه شبهه که که بد و امر به نظر نیست. و با کمی دقت اصلا معلومه که این شبه نیست مقالش رو دقت بفر آنچه باید روی آن تعمل کرد این است که آیا کارهای اختیاری انسان و همه حوادثی که برای بشر واقع می شود در امول کتاب یا تسیانه خلا رتب به منا یا که شما خب همش در اومل کتابی که خب پس هرچی که در رابطه با انسان هست هر کار که شما میخواید بکنید چه در گذشته انجام دادید چه در حال انجام میدید چه در آینده انجام میدید خب این سؤاله آیا در اومل کتاب ثبت و ضبط هست یا نه این پرسش مهم است چون انسان خیال میکند که اگر همه کارهای اختیاری او قبلا معلوم باشد یک نوع جبر ایجاد می شود و یا اگر حوادث پیش آمده برای هر کسی نوشته شده باشد پس کارهای او جبری است و هر کس سرنوشتی دارد که ناخداخواه یعنی که خواه ناخواه اتفاق می افته. چرا؟ چون تو اون کتاب؟ بله؟ سبت و ضبط دیگه ای قرار شما مثلا فرض کنید هرچه بشمید در اون کتاب زن پس من چرا رو باید فعالیت بکنم چون اون که اتفاق می افته این مسئله ابعاد بسیار گسترده ای دارد و از جمله با گستره علم الهی ارتباط دارد بعد علم رو باید بشناسیم چی هستش و از دین اهمیه پرسه شد تا سوال مطرح میشه و اون اهمیت داره این دو سوال رو جواب بدین یک آیا از دیدگاه قرآن همه حوادث و کارهایی که ما با اختیار انجام می دهیم در آن کتاب ثبت شده یا نه؟ اینکه گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم خب شما یه روز تصمیم میگیریم بیا یه روز تصمیم میگیری؟ نه یا خ من اختیار دیگه؟ خب این اختیار شما در فعل خداوند در علم خداوند سبت و زبت و یا نه این سواله سال، سوال دوم به فرض اینکه تمام حوادث و کارهای اختیاری انسان در کتابی ثبت شده باشد آیا چنین چیزی موجب جبر نیست خب خداوند در واقع در ازل دیده که من چه کنم خب اگر من این کار رو انجام ندم که از خودم که اختیاری ندارم من مجبوره به فعل خدا هستم دیگه بعد اون طرفم گفتم من خو اگه می نخورم علم خدا چی میشه نقص میشه دیگه می خوردن من از ازل خدا میدونه خب من, من اگر مثلا فرض کنید فرض بفهمید اگه خطایی کنم خب این در علم خدا بوده دیگه خب من در واقع مجبورم چون علم خدا در واقع تحقق پیدا میکنه و من اصلا اختیاری ندارم از خدا پاسخ قرآن درباره پرسش اول مثبت پرسش اول چی بود اینکه آیا در واقع حوادث انسان که کارهای اختیاری انسان باشه در علم خدا ثبت و شده از ثبت و ضبط برخی از آیات به عموم خود بر این معنا دلالت دارند که تمام حوادث و پیشامدهای که برای هرکس کس رخ میده در کتابی ثبت است در سوره مبارکه یعنی آیه مبارکه آیه شریف پنجام و یعنی ما فی البر و البر و ما تسختم من ورغتن الا یعنی ولا ها في لا حبتن فی ظلمات لعنز ولا لا رتم و یابسن الا في کتاب مبین همه رو دیگه به اون عبارت آخر همه چی کتاب مبین هست در سوره مبارکه ی حدید آیه بیست دو مؤسابه من مصيبتن فلا عز ولا عافيه انفسكم الا في كتاب من قبل هیچ مطلب نیست که در نظام خلقه. و نسبت به شما اتفاق بیفته مگر اینکه قبل نوشته شده الا في كتاب من قبل کتابی هست بنابر این این مطلب مسلم که همه حوادث انسان و همه عوادث خلقت در کتاب مبین ثبت و ضبط هست. این که تردید درش است. اما سوال دوم، حالا که ثبت و ضبط هست، آیا این شاعبه از جبره؟ اما پاسخ پرسش دوم، که آیا ثبت تمام حوادث و پیش آمدها حتی کارهای اختیاری انسان موجب سلب اختیار و اثبات جبر است پاسخ این سآل چی آقا؟ منفیست چرا؟ از این استدلال نمیخواد این توجه میخواد توجه کردن با استدلال کردن زمین تاسمون فرق داره یه خود توجه میخواد توجهش چیه در کتاب مبین چی ثبت همه چیز به چه شکلی همه حوادث همان گونه که واقع میشوند در کتاب ثبت است متوجهش مطلب شدید همون جوری که واقع میشه ثبت یعنی با اختیار تو هر اتفاقی میفته اونجا سبته نه اینکه اونجا سبت است و تو تابقا نعل بنل اونو انجام میدی این نظیر پیش بینی های بشره که میگه جاده تهران قم مثلا 200 کیلومتر حالا ما چند کیلومتر اضافه کرده بپنده از در حکومت حساب بعد با ماشینی هم که دل... با ماشینی هم که در میری مثلا صد کیلومتر در ساعته خب شما چند وقت بعد در قوم خواهید بود اگه ساعت چهار بعد از ظهر شروع بکنی؟ یعنی دو ساعت بعد. این جبره؟ این در واقع پیشبینی بر اساس مختصاته. اون که در علم خداوند نسبت به حوادث وجود دارد با مختصاتی ثبت زبط زبطه. که تو با اختیارت میشوی سلمان فارسی و تو با اختیارت میشی یزید ابن ماویه. و من اینو نوشتم. نوشتم که فرزند معاویه حتما باید یزید بشه به شغی و شقی و نوشتم که فرزند همه یه انبیاء باید سعادت من بشه ننوشتم نوشتم نوشتم پسر نوح با اختیار خودش اهل شقابت و همین اتفاق میفته چون در واقع علم خداوند این عبارت خیلی دقیقه حوادث همان گونه که واقع میشوند در علم الهی ثبت شده کارهای شما چه جودی واقع میشوند بله از روی اختیار همین اونجا ثبت کرده که آقا با اختیارش اهل سعادت و اون آدم با اختیارش اهل شقاوت این فقط توجه میخواد چیزی بیشتر از این نمیخواهد هوادث همان همان گونه که واقع میشوند در علم الهی ثبت شده آنچه با اختیار ما انجام میشود در علم الهی ثبت شده که با اختیار واقع میشود یعنی نوشته شده فلان کس در فلان زمان با اختیار خود چونی خواهد کن. به علاوه معلفه اختیار این حسبیت اختیار است نجاب اگر جبری باشد برخلاف علم کتاب الهی است پس صرف اینکه خدا می داند و می نویسد و یا حتی قبلا هم اعلام می کند که شخصی با اختیار خود در وقت معین این چنین خواهند کرد، بچه به جب نمیشه چرا؟ چون اونشی که در علم خداست همون است که قراره اتفاق بیفته با مختصاتش اتفاق بیفته. شما انسانی هستی که از روی اختیار عمل میکنی و سعادت من، کمیز سعادت من. با مختصات ملوشل نزدیکش در عالم دنیا زیاد اتفاق میفته. معلم. ها خب بالاخره هرفهی هم دیگه مثلا وقتی میبینه یه شاگردش داره فعالیت میکنه میگه آتو قبول میشی میگه اصلا تو نفر پنجم کنکور میشی تو اینقدر مثلا فضل فزب... چون میفهمه از کجا میفهمه میگه خب اینقدر که تو داری تلاش بکنی خود تو داری میگوشی خب قطعا قبول میشی دیگه یعنی در واقع علم معلم به اون نتیجه بر اساس است که تو داری از خودت بروز میدی. به خاطر نوع یا هر صحبتی هم مطرح میشه پس بین علم الهی و اون چی که از حوادث ولو با اختیار در نزد و او ثبت و ضبط است هیچ تعارضی وجود ندارد چون علم به حوادث به همون شکل که قرار است اتفاق بیفته بنده و شما با اختیار از سایر موجودات بدون اختیار همین ثبت و ضبط است خب یک بخش دیگری از این که قریب از سنگینی نبود که خدا یه <clears throat> بخش دیگری از علم خدا باقی میمونه و اون این که علم خدا به سه قسمت تقسیم میشه علم به ذات علم به موجودات قبل از اینکه خلقشون بکنه علم به موجودات بعد از اینکه خلقشون بکنه دیگه غیر از این شق چارم وجود نداره این رو هم مقالهش رو توجه بفرمین اینا دیگه بحث های توضیح نیست ولی داریم میدیم که اگه یه جایی بهش خب اینا همش دلیل داره همش اثبات داره ها دیگه خدایی دیگه همه دلیل و اثباتش رو چون اون دیگه بحث کاملا بحث های فلسفی است ولی همینقدر بدونید که علم خدا در علم کتاب چیه علم خدا چرا مثلا هم فرض کنید؟ تحلیلش رو بدونید حالا اگه استدلالش هم نمیدونید شو شب اول قبل که استدلال از از سوال نمی که بعد حوزه اعتقادات شما بر اساس در واقع دانشتون شکل میگیره حالا این دانش باید اثبات بشه مرحله دوم من اگه بخوام همه چیز رو اینجا بگم دیگه خب شاید گست هرگز نرسیم بحث عدل خدا چون بعد از بسنف هست علم خدا قدرت بعد از قدرت اراده است بعد از اراده مشیت. خب این که هر که به بگی یه نمیرسیم به هر صورت آدم میداد یه جایی چی میشه چی میشه خسته میشه دیجای خسته میشه زرنگی باید کرد و قبل از اینکه به اون خستگی آدم برزن اما یه جایی رو در واقع یک محصولی رو ایجاد کرده باشه قبل از این خستگی ایجاد بشه خب از علم خداوند به سه مرتبه است علم خدا به ذات خودش علم خداوند به ذات خیش علم حضوری است گونه که علم انسان به خودش شما نزد خودت حاضر هستی یا نه خودت نزد خودت حاضری یا صورتت؟ خودت. اینو میشه یا علم حضوری. علم خداوند به ذات خودش علم حضوری است چون خودش نزد خودش حاضره. ذاتش و صفاتش عین هست. اساساً علم عبارت از حضور معلوم نزد عالم هرگاه موجودی مجرد از ماده باشه بدون شک واقعیت آن موجود برای خودش چیه؟ حاضر دیگه. بدون ماده باشه. وقتی ماده میاد بس بس صورته. ولی وقتی بس بس ماده نیست میشه بحث چی؟ خود حقیقت، خود اون عینیت. شما صورتت نزد خودت نیست، بلکه خودت نزد خودت هستی. علم شما به خودتون علم نیست بی واسطه. ولی علم شما به غیر علم نیست با واسده یعنی به واسده اون صورت هست که شما با غیر ارتباط برقرار میکنید اصلا فضای شناخت ذهن یک بحث خیلی اساسیه در این حالی که جذابه در این حال هم بسیار سخته واقعا هم از مسادق اون که اگر آن بخواد بپردازه از اون مسادقی که میگن که میخواست راه رفتن کلاه یاد بگیر را رفتن خودش هم یادش یادتون میرسن اصلا چون خودش بحثی است که بدون شک واقعیت آن موجود برای خودش حاضر است زیرا چون مانع حضور چیزی در نزد خودش میباشد مادی و متغیر بودن آن است و چون خداوند منزه از ماده و پیراسته از تغییر است ذات او نزد خودش حاضر است و به ذات خود علم دارد این یه بخش از علم خداست علم خودش به خودش که هست در اینجا ما شبیه خداییم علم خودمون به خودمون گردو از اصل علم حضوری برصورت آنه دیگه تواب این خدا شیرت کرده الحب